نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست با درود خدمت شما عزیزان همسفر و همراه من با یکی دیگر از قصه های های جادوگری در خدمت شما هستم و امیدوارم که تا پایان این قصه هم با بنده همراه و همسفر باشید این داستان پادشاه رودخانه تلایی. قسمت اول چگونگی ملاقات آقای باد جنوب شرقی با برادران سیاه به نام خدا در سرزمینی دوردست در ری حاصل هیزی بود که دور تا دور اون رو کوهای سنگی مرتفعی فرا گرفته بودند. قله های کو همیشه پوشیده از برف بود از این قله ها چند رودخانه به داخل دره سرازیر میشد رودخانه ای هم از تخت سنگ بسیار بلندی راهی قسمت شرقی دره میشد این تخت سنگ اونقدر بلند بود که وقتی خورشید غروب می کرد همه چیز رو در تاریکی فرو می برد هنموز نور به این رودخانه میتابید و اون رو چون طلا زردنگ ساخت. به همین دلیل مردم اون رودخونه رو رودخانه طلایی میگفتند گفتند. جای تعجب بود که هیچ کدوم از رودخانه ها به دره خودشون سرازیر رو نمی شدند. بلکه به طرف دیگر کوهستان جریان پیدا میکردند و از دشت های پهناور و شهرهای بزرگ می گذشتند. آروم و سبک بر بالای تپه های برفی دراز می کشیدند و برای مدتی در اونجا باقی می موندن. در این دره کوچیک هنوز بارندگی بود. محصولات ذرت این دره خیلی درشت بود. علفهاش بسیار سبز و سیبهای قرمزش بسیار خوش رنگ و خوشعت رو خوشتن بودند به طوری که این دره رو دره تلایی می گفتن. همه ی زمین های این دره متعلق به سه برادر به نام های و هنس و کلوک بود. شوارس و هنس دو برادر بزرگتر مردان خشنی بودند با چشمان ریزی که در ته صورتشون پرو رفته بود. و. این چشم‌ها همیشه نیمه بسته بودند به طوری که بیننده فکر میکرد باید همیشه از اونها فاصله بگیره. این برداران از کار روی زمین زندگی خودشون رو تامین میکردند. اونها به شدت کار میکردند و از زمین ها به دقت مراقبت میکردند و دشمن هر موجود زندهای بودن که وارد زمین اونها میشد. اونها پرنده آوزخونی رو به خاطر به سی به سیب درخت اونها نوک زده بودند کشتن و دو خدمتکار خودشون رو بدون پرداخت پولی، مجبور به کار میکردند تا اونجایی که دیگه قادر به کار نواشن سپس با بهونه گرفتن اونها رو بدون هیچ کمکی از خونه بیرون میکردن با این همه جای شگفتی بود اونها با وجودن داشتن چنین زمین حاصل کیز و انجام چنین کارهایی هنوز به اندازه کافی ثروتمند نشده بودند. البته وضع اونها خوب بود اما تا کنون حتی یک سکه هم به مرد فقیر کمک نکرده بودند اونها هرگز به کلیسا نمی رفتند و اگر کسی از اونها میخواست به کلیسا کمکی کنه به شدت عصبانی میشدند رفتار اونها با مردم اونقدر بد بود که اهالی اون منطقه این دو برادر رو به برادران سیاه نامگذاری کرده بودند اما کلوک برادر کوچکتر اصلا شبیه این دو برادر نبود. اون دوست نداشت مثل اونها رفتار کنه. کلوک پسری 12 ساله بود با چشمانی آبی و موهای طلایی اون تمام موجودات زنده رو دوست داشت. برادرانش اون رو دوست نداشتند اگر چیزی برای پخت و پس کنار میگذاشتند این دو برادر حتی به خودشونم سختی میدادن و همواره مقدار کمی خوراک در خونه بود. که وظیفه داشت اون رو بپزه و همچنین باید اتاقها و کفشها رو تمیز میکرد ظرفها رو میشست و غذایی که نصیب اون میشد باقیماندهٔ اتفاقی از بشقاب برادرش بود و مطمئنا مقدار خیلی ناچیزی بود برای مدت طولانی زندگی این سه برادر به همین منبال میگذشت تا اینکه تابستان بدی اومد و در تمام شهرهای اطراف علفها خوش شدند، ذرتها بین رفت و وضع همه مردم خراب و نامساعد شد. تنها در دره طلائی سالم مونده بود. چون انگامی که در سایر نقاط خوشالی بود، در دره طلائی بارون اندازه کافی میبارید. زمانی که در سایر نقاط آفتابی نبود، در دره تلایی خورشید میدرخشید. مردم برای خرید ذرت نزد برادرهای سیاه میرفتند و وقتی اونها رو ترک میکردند به اون دو نفر ناسزا میگفتند و اونها رو نفرین میکردند چون اونها مبلغ زیادی برای زرتها درخواست میکردند و مردم فقیر قادر به پرداخت چنین پولی نبودند و از گرسنگی میمردند بدون اینکه برادران سیاه از اون موضوع متأسف شده باشند گذشت زمستون اومد روز سردی بود برادران بزرگتر به کلوک امر کردن که در خونه بمونه و مراقب پخته شدن یک تکه گوشت باشه تا اونها برگردن. سفارش کردند که کسی رو به خونه راه نده و چیزی هم به مردم نده بعد هردو از خونه خارج شدند کلوک کنار آتیش نشست و باران تندی میبارید دیوارای آشپزخونه چندان خشک نبود کلوک در این اندیشه بود که کاش برادرانش با مردم مهربون بودند و گاهی اوقات مردم فقیر رو دعوت میکردن تا با اونها غذا بخورند. به ظرف غذا نگاه میکرد با خودش میگفت این تکه های گوشت لذیذه ولی متاسفانه بسیاری از مردم این سرزمین این روزها حتی یک تکه نان خشک هم برای خوردن ندارن و اونها حتما خوشحال میشن اگر برای خوردن چنین غذایی دعوت بشن در همین لحظه در به صدا در اومده. و کلوک با خود گفت که این باید صدای باد باشه. چون هیچ کس از ترس برادرانم جرعت نمیکنه اینجوری در بزنه. دوباره صدای در به گوش نسو. نه این نمیتونه صدای باد باشه. کسی پشت دره و گویی اصلا نمی ترسه. صدای در پشت سرهم هم شنیده می شود. کلوک به طرف پنجره دوید و در رو باس کرد و با تعجب مرد بسیار کتا قدی رو دید که دماغ بسیار گنده ای و صورت گردی داشت. چشماش خیلی روشن بود. موهای سفید از پشت گردنش آویزون شده بود و حدود 135 سانتی قد داشت. کلاهی به سر داشت که درست به بلندی قد خودش بود و در نوک کلاه پر سیاهی به طول 120 سانتی متر داشت. کت سیاه خیلی بلندی پوشیده بود که چهار برابر قد اون بود کلوک از اون چه دیده بود اینقدر متعجب شده بود که نمیتونسه حتی حرفی بزنه مرد فیر دوباره در زد و صدای زیادی ایجاد کرد سپس برگشت و دنباله کتش رو که به نظر میرسید داره پرواز میکنه بگیره در همین موقع بود که چشمش به کلوک افتاد مرد گفت های پسر درست نیست که در و باز نمیکنی در و باز کن بگذار که داخل شم خیلی سردم شده کلوک گفت نمیتونم این کارو کنم چون اگر چنین کاری رو کنم برادرانم حتما مرو کتک میزنم. به بنابراین نمیتونم اجازه بدم که شما وارد بشید شما چی میخواید پیرمرد با عصبانیت گفت حفنیس اون آتش به اون خوبی بدونه اینکه کسی رو گرم کنه بسوزه اجازه بده که من وارد خونه بشم حالا کلوک سرش رو بیشتر از پنجره بیرون آورده بود و سرمایه شدید هوا رو احساس میکرد. برگشت رو به آتیش نگاه کرد و از اینکه این, این آتش نمیتونست مرد رو گرم کنه احساس ناراحتی کرد با اندیشید که بیچاره حتما خیلی سردشه بهتره برای چند لحظه به اون اجازه بدم به اون اجازه بدم که وارد بشه بشود سمت ده رفت و در رو باز کرد پیرمرد وارد شد ورود اون باد شدیدی به درون خانه وزید. آقای کوچیک اندام گفت تو پسر مهربونی هستی ترسی از برادرات نداشته باش من با اونا صحبت میکنم. کلوک گفت نه آقا خواهش میکنم من نمیتونم تا اومدن اونها به شما اجازه بدم که اینجا باشید. اونها منو به قصد کشت میزنن. پیرمرد گفت جای تاسفه من چقدر میتونم اینجا بمونم؟ کلوک پاسخ داد فقط تا زمانی که غذا پختشه اون هم تقریبا آماده است پیرمرد باشپونه رفت و کنار تیش نشست. کلوک غمگین به سراغ ض غذا رفت و گفت شما به زودی گرم و خوش شد اما پیرمرد خشک نشد آب از سر و روی اون سرازیر میشد و روی زغال سنگ های داغ میریخت و صدا می کرد و شله ها سیاه رنگ می شد کلوک به آبی که از کته مرد به صورت رودخانه نقره‌ای در کف اتاق جاری شده بود مینگرست بالاخره روبه پیرمرد مرد کرده گفت میبخشید میخوای کت شما رو آویزون کنم پیرمرد گفت نه متشکرم کلوک خواست کلاه پیرمرد مرد رو از اون بگیر و آویزون کنه اما پیرمرد با عصبانیت گفت نه متشکرم اتیاجی به این کار نیست کلوک گفت اما ببخشید شما دارید آتیش رو آقای پیر به سرعت جواب داد بله مسلما در این صورت پختن غذا طولانی خواهد شد و من بیشتر میتونم و گرمو استفاده کنم. کلوک با تعجب به این پیرمرد که سخت به خودش مطمئن بود نگاه میکرد و سپس بلند شد تا به غذا سری بزنه. پیرمرد گفت گوشت خوشمزهای باید باشه. ممکنه که یه تیکه از اون گوشت رو به من بدی؟ کلک گفت، واقعا متاسفم که باید بگم نمیتونم. آقای پیر گفت، من دو روز هست که غذا نخوردم و سخت گرستم. اگه تکه گوشتی کوچیک به اون بده، برادرانون متوجه نمیشن. لحن صدای پیرمرد اونقدر غمگیم بود که کولک نتونست. جواب منفی بده و گفت، برادرانم، قول دادن تیکه از این گوش رو به من بدن. من سهم خودم رو به تو میبخشم. اما فقط به اندازه سهم خودم نبیشتن آقای پیر گفت متشکرم پسر جان کلوک مشغول بریدن تکه از گوش شد و در همین لحظه صدای در شنیده شد آقای پیر از جا پرید و کلوک به سرعت گوشت بریده در سر جاش گذاشت سپس دوید و در باز کرد شوارز وقتی وارد خونه شد گفت چرا ما رو زیر بارو منتظر گذاشتی؟ و کلاه خیص رو به صورت کلوک زد و هنس دنبال حرف شوارتز رو گرفت و گفت چرا در حالی که گوش اون رو گرفته بود به طرف آشپزخونه میکشوند و ادامه داد تو به درد هیچ کاری نمیخوری وقتی شوارتز در آشپزخونه رو باز کرد با تعجب گفت خدا به ما رحم کنه و پیرمرد در حالی که کلاهش رو برداشته بود و کنار میزی نشسته بود گفت امیدوارم انشا اما هنوز حرفش تموم نشده بود که شوارتس چوبی برداشت و با عصبانیت به طرف کلوک رفت و از اون پرسید این کیه؟ کلوک با ترس پاسخ داد: "برادر، من واقعا نمیدونم اون کیه." شما فردیات کشید، پس چطوری به اینجا اومده؟ کلوک گفت: "برادر جان، خیلی سردش بود." و حالا درست چوب نزدیک بود که توی سر کلوک بخوره که آقای پیر کلاهش رو انداخت. کلاه اون اونقدر محکم به چوب خورد که همه آب اون به اتاق ریخت و عجیبتر این که چوب از درست شوارس خارج شد و پرواز کنان وسط اتاق افتاد. شوارس فریاد کشید که تو کی هستی؟ و هنس با صدای خشنتر پرسید و چی میخوای؟ آقای پیر به آرومی جواب داد پیر مردی فقیر هستم که آتیش شما رو از پشت پنجره دیدم و درخواست کردم برای مدت کوتاهی کنار اون بنشینم و خودم گرم کنم شواز گفت حالا بهتر زود اینجا بری پیرمرد گفت روزه خیلی سردیه به موهای سفید من نگاه کنید درست نیست من در چنین روزی از اینجا بیرون برم و شما من رو از اینجا بیرون کنید هنس به موهای اون که پشت سرش ریخته بود نگاه کرد و گفت تو اونقدر مو داری که تو رو گرم نگه میداره یالا برو دیگه پیرمرد مرد گفت من خیلی گرستم قبل از رفتن یه توی نون به من بدید شوارز گفت نون فکر می‌کنی ما خودمون بلد نیستیم نون بخوریم که اون رو به پیرمرد مرد داد و دماغ قرمزی مثل تو بدیم هنس با خنده وحشتناکی گفت خب چرا پر کلاهت رو نمیفروشی که نون بخری یالا یالا برو گم شو پیرمرد باز اصرار کرد خواهش میکنم فقط یه تیکه کوچیک نون به من بدید دوباره بهش گفتن برو پیرمرد گفت من براتون دعا میکنم آقای محترم هنس با صدای بلند گفت برو بیرون دستش رو بلند کرد تا بازوی پیرمرد رو بگیره و اون رو بیرون بندازه که به محض بلند شدن دست اون درست مانند چوب به هوا پرواز کرد و به دیوار مقابل اتاق برخورد کرد و به زمین افتاد شوارس با عصبانیت به طرف پیرمرد دویتا اون رو بزنه اما به محض تماس دست اون با پیرمرد اون هم به دنبال چوب و هنس سرش به دیوار مقابل خورد و به زمین افتاد حالا چوب و هنس و شوارس هر سه نقش زمین شده بودند پیرمرد کلاهش رو به سر گذاشت و اون رو با دست به یک طرف کت کرد. چون کلاه خیلی بلند بود نوکش به صفح اتاق گیر میکرد. سپس در حالی که خونه رو ترکی کرد داره میگفت. آقای محترم روز خوبی داشته باشید. ساعت دوازده شب باز شما رو خواهم دید. با این رفتار امروز نباید تعجب کنید که این ملاقات آخر من باشه شوارس در حالی که داشت از کف اتاق بلند میشد گفت اگه یک بار دیگه تو رو اینجا اما نتونست جمله رو تموم کنه چرا که پیرمرد خارج شده بود و در رو با شدت پشت سرش بست در همون هنگام توده عبر سیاهی به سرعت از جرای پنجره عبور کرد شوارس گفت خب، جناب کلوک، چشمم روشن، برو غذا رو بیار، وای به حالت اگه دفعه بعدی، دیگه چنین کاری رو بکنی اهه، اهه، چرا گوشت رو بریدی؟ کلوک پاسخ داد، شما گفتید که من میتونم یه که از اون گوشت رو بخورم. و تو وقتی که غذا گرم بود، قسمت خوب اون رو بریدی، ها؟ برو بیرون، برو بیرون منتظر باش تا صداد کنم. کلوک با قصه از اتاق خارج شد. برادران بزرگتر تا اونجا که تونستند خوردند و باقی مونده غذا رو جمع کردند. شب باد میوزید و باران پی در پی میبارید. هنس و شوارز تمام در و پنجره ها رو بسته بودند و در همون اتاق خوابیدند. ساعت دوازده شب با صدای وحشتناکی از خواب بیدار شدند و در کاملا از وسط باز شده بود. با چنین صدای مهیبی به نظر می رسید که خونه فرو خواهد ریخت در بسترش نشسته بود و می پرسید چی شده آقای کوچیک گفت هیچی منم دو برادر با تجرب به تاریکی نگاه می کردند و اتاق پر آب شده بود و نور کمرنگ ما از پنجره اتاق میتابید. و در همین نور اندک گلوله توپی بزرگی رو دیدند که میچرخید و میچرخید و بالا و پایین میرد این گلوله برای مرد مثل تختی بود که اون روی اون دراز و بود و کلاه بلندش حالا به اندازه کافی فضا داشت چرا که سقف خونه رو باد کنده بود و برده بود پیرمرد گفت میترسم اینجا نتونید راحت بخوابید لخت خواب‌های شما خیلی خشک نیست بهتره که به اتاق برادر کوچیکتون برید چرا که اونجا کاملا سالم و به همون اندازه خشکه که قبلا بوده. اونها با شنیده نیه حرف با حداکثر طبان به طرف اتاق کلوک جویدند و پیرمرد پشت سر اونها فریاد زد به خاطر بسپارید که این آخرین دیدار من با شما بود. شما اسم منو روی میز آشپسونه خواهید یافت. بلخره صبح شد و دو برادر از پنجره کوچیک اتاق خلوک به بیرون نگاه میکردن. در ری طلایی مثل قبل نبود. و. آب درختان، قلات، گاوها و هر چیز دیگه‌ای رو با خود برده بود و جای همه اونها زمین سرخ ویران باقی مانده بود. دو برادر به آشپزخانه رفتند. در اونجا هم همه چیز رو آب با خودش برده بود و تنها یک تکه کاغذ روی میز آشپزخانه باقی مونده بود که روی اون با حرف درشت نوشته شده بود آقای باد جنوب شرقی بله دوستان من این بود قسمت اول کسته ملاقات آقای باد جنوب شرقی با برادران سیاه اگر که مایل هستید که بدونید سرگذشته این سه برادر به کجا میکشه باید در قسمت بعدی با من همراه و همسفر باشید تا با هم به اتفاق پیگیر عاقبت این سه برادر بشیم پس تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که در قسمت آینده هم شما با بنده همراه و همسفر باشید. مثل همیشه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ می و براتون آرزوی سلامتی و شادی می خدا یار و نگهدار شما مراقب خوبی خودتون باشید. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها